جن خودخواه نوشته یا ریچارد داکینز فصل نهم بخش اول جنگ میان دو جنس نرو ماده وقتی بین والد و فرزند که پنجاه درصد جن همدیگر را دارن تضاد منافع وجود دارد تضاد بین جفتها ها که هیچ نسبتی با یکدیگر دیگر ندارن تا چهت میتواند شدید تر باشد تنازیز مشتره که آنا پنجاه درصد سهم جنیست که در فرزند مشترکشان دارم. از آنجا که هم پدر و هم مادر به موفقیت نسبی که در آن بچه مشترک دارند علاقمند هستند، همکاری در بزرگ کردن او به سود هردوی آنهاست. اگر یکی از آنها با کوتاهی در سرمایهگذاری مساوی از امکاناتش خود را کنار بکشد چندان ضرر نمی کند، زیرا می تواند با مایه گذاشتم، برای بچههایی که از شریک های جنسی دیگر پیدا می کند خودش را منتشر کند. بنابراین می شود اینطور در نظر گرفت که هر فرد سعی دارد از طرف دیگر سو استفاده کند و او را به سرمایه گذاری بیشتر وا دارد. در مطلوبترین حالت آنچه یک فرد می منظورم لذت جسمی نیست گرچه این هم ممکن است باشد. این است که با بیشترین تعداد از اعضای جنس مخالف آمیزش و سپس آنها را ترک کند و بگذارد او بچه ها را بزرگ کند همونطور که خواهیم دید این وضعیت در مورد نرهای بعضی گونه ها دیده می شود. اما در برخی گونه های دیگر نرها مجبورند بخشی از بار سنگین پرورش بچه ها را به دوش بکشند. این برداشت از شراکت نر و ماده به عنوان رابطه‌ای که در آن سوء استفاده و عدم اعتماد دو جانبه است به ویژه مورد تاکید تریورس بوده است. این موضوع از نظر رفتارشناسان بحث نسبتاً جدیدی است. قبلاً تصور ما از رفتار جنسی، آمیزش و معاشرت قبل از آن، معمولاً یک همکاری با منافع دو جانبه و حتی به خاطر صلاح گونه‌ها بود. بیایید یک راست برگردیم به اصل مطلب و ذات اصلی نر بودن و ماده بودن را مورد بررسی قرار دهیم. در فصل سوم درباره جنسیت صحبت شد بدون اینکه به عدم تقارن اساسی آن اشاره شود پذیرفتیم که بعضی حیوانات نر و بعضی دیگر را ماده می نامیم بدون اینکه بپرسیم در واقع معنی این واجه ها چیست خب جوهره نر بودن چیست مفهوم ماده در اصل چیست برای ما که از پستان دارانیم جنسیت با همه نشانگان خاص خود، داشتن آلت تناسالی نر، زایمان، شیر دادن از قده مخصوص، بعضی ویژگی های کروموزومی و غیره تعریف می شود. این ضوابط برای تعیین جنس فردی که پستاندرست به کار می آید. اما برای کل جانوران و گیاهان چندان معتبر نیست. مثل این است که از شکل شلواری یک انسان بخواهیم در مورد جنسیت او اظهار نظر کنیم. به عنوان مثال در قورباغه در هیچ یک از دو جنس alat تناسلی خاصی وجود ندارد شاید در آنجا واژه نر و ماده دیگران مفهوم عام خود را نداشته باشد. البته اینها واژعند و اگر در توصیف قورباغه به درد نخورند به راحتی می از خیرشان بگذریم اگر دوست داشته باشیم می به صورت قراردادی قورباغه ها را به جنس یک و جنس دو تقسیم کنیم اما یک ویژگی اساسی در جنسیت است که می شود آن را در همه گیاهان و جانوران مبنای جدا کردن نر و ماده از هم قرار داد و برچسب نر بودن را روی نر و برچسب ماده بودن را روی ماده زد و آن این است که سلول جنسی یا زامه های نر خیلی ریزند و پرچمارتر از زامه های ماده است. این امر هم در مورد گیاهان و هم در جانوران صادق است. یک دسته از افراد سلولهای جنسیشان درشت است و راحت این است که آنها را ماده بنامیم گروه دیگر که به خاطر راحتی نر مینامیم سلولهای جنسیشان ریزتر است این تفاوت به ویژه در خزندگان و پرندگان آشکار است در آنها هر تخم یک سلول بزرگ است انقدر بزرگ و سرشار از مواد مقضی که می تواند چند هفته غذای یک نوزاد در حال رشد را تعمین کند حتی در انسانها که تخمک با میکروسکوپ دیده می شود باز هم بارها از اسپرم درشتر است همونطور که خواهیم دید شاید بتوانیم تمام تفاوتهای دیگر بین این دو جنس را ناشی از این تفاوت اساسی بدانیم در بعضی زیست مندان ابتدایی مثلا بعضی قارچها نوعی تولید مثل جنسی رخ می‌دهد ولی نر بودن و یا ماده بودنی ملاحظه شود در نظامی که به جرزامی مشهور است افراد به دو جنس قابل تفکیک نیستند هر کدام می‌تواند با یکی دیگر پی‌آمیزد این طور نیست که دو نوع متفاوت زامه یعنی اسپرم و تخمک وجود داشته باشد بلکه همه سلول های جنسی مانند همان و جرزامه نامیده میشوند. از لقاه دو جرزامه، افراد جدیدی تشکیل میشوند شوند که هر کدام تقسیم میوزی ایجاد اند. اگر سه جرزامه A, B, C داشته باشیم، A می تواند با B و C بیا میزد و B می تواند با A و C بیا میزد. در نظام های جنسی عادی هرگز چنین وضعیتی وجود ندارد. اگر A اسپرم باشد و بتواند با B و C بیا میزد آن وقت B و C، باید تخمک باشند و نمی توانند با هم ترکیب شوند. وقتی دو جور زامه ترکیب می شوند هر دو به تعداد مساوی ژن و همچنین مقدار برابری از ذخیره های غذایی را در فرد جدید به شراکت میگذارند. اسفرم و تخمک هم تعداد مساوی ژن را به شراکت میگذارند، اما تخمک از نظر مواد غذایی سهم خیلی بیشتری در این شراکت دارد. در واقع اسفرم مثلا نقشی ندارد. فقط با سعی و تلاش هرچه بیشتر جن را به یک تخمک میرساند. به در لحظه باروری سهم شراکت پدر در این سرمایهگذاری کمتر از یک مشارکت عادلانه یعنی پنجاه درصد است. از آنجا که اسفرما بسیار ریزند و هر نر در روز میتواند میلیونها از آن را بسازد. پس می میتواند در زمان بسیار کوتاهی تعداد بیشماری فرزند با استفاده از ماده های متفاوت تولید کند. چون در هر مورد مادر غذای کافی برای جنین تأمین میکند. بنابراین این وز تعداد بچههایی تا که یک ماده میتواند داشته باشد محدود میکند. اما تعداد بچههایی که یک نر عملا میتواند داشته باشد نامحدود است. و از اینجا داستان بهدگیری از ماده شروع میشود. پارکر و همکارانش نشان دادند چگونه تکامل این عدم تقارن میتواند ناشی از یک وضعیت جرزامی اولیه باشد. در ایامی که همه سلولهای جنسی کم و بیش هم اندازه بودند و به جای هم به کار می رفتند، بعضی سلولها به طور اتفاقی کمی دروشتر از بقیه بود، از بعضی نظرها یک جرزامه درشت به جرزامهٔ ریز برتری داشت زیرا جنین خود را با ذخیره غذایی بیشتر تغذیه میکرد و بنابراین شروع خوبی را برای آن رقم میزد به این ترتیب احتمالا روند تکامل در جهت های درشتر پیش رفت اما اشکالی در بین بود تکامل های درشتر از حد لازم راه را برای بهرهجویی خودخواهانه از آنها باز میکرد آنهای که جرزامه کوچکتر از حد متوسط تولید می می‌توانستند از این وضع به نفع خود استفاده کنند. البته در صورتی که مطمئن می شدن جرزامه کوچکشان با آن جرزامه بزرگ ترکیب می شود و این با واداشتن جرزامه ریز به جا به جایی سریع تر و پر جنب و جوشتر در جستجوی جرزامه درشت مقدور می شود. فردی که جرزامه ریز و با حرکت سریع می ساخ این امتیاز را داشت که تعداد زیادی از آنها را بسازد و در نتیجه تعداد فرزندان وش بسیار زیاد باشد انتخاب طبیعی به تولید سلولهای جنسی که کوچک و سریع در جستجوی جرزامه درشت و پیوند به آن بودند برتری داد بنابراین ما میتوانیم دو راهبرد تکاملی جنسی جداگانه را در نظر بگیریم یکی راهبرد صادقانه با سرمایهگذاری زیاد است وجود این راهبرد راه را برای یک راهبرد منفعت طلبانه باز گذیری کمتر باز کرد این راهبرد در پیشروی در مسیر خود از هم فاصله گرفتند و این روند با شدت ادامه یافت آنها که اندازشان متوسط و بینابین بود تنبیه می شدند. زیرا از امتیازات هر از آن دو استراتژی یا راهبردهای تر محروم بودمد سوء استفادهگرها را کوچک و کوچکتر و سرعت حرکت را بیشتر کردند درست به تدریج اندازارات درشت و کردند. کردند، میخواستند میزان به کاهش سهم سو را جبران کنند. و چون همواره آن سو پرجنب و جوش دنبالشان بودند، بی حرکت شدند. هر درست ترجیح میدهد با یک درست کار دیگر بیا میزد. اما فشار انتخاب طبیعی؟ برای بستن راه سو یعنی نرها ضعیفتر از آن فشاری بود که سو برای مرتفع کردن موانع به کار می بستند. زیرا اگر این کار را نمی کردند، چیزهای بیشتری را از دست می دادند. بنابراین در نبرد برای تکامل پیروز شدن درست کارها شدن تخمک سو استفادگرها شدن اسپر بنابراین به نظر می رسد نرها موجودات بسیار بیارزشی باشند بر مبنای ساده توجیه مصلحت گونه ها شاید انتظار داشته باشیم که تعدادشان کمتر از تعداد ماده ها باشد چون هر نر بر این اساس می تواند انقدر اسپرم تولید کند که یک حرمسرای دارای 100 ماده را بست باشد می شود فرض کرد که در جمعیت حیوانات تعداد ماده در مقابل نر باید صد به یک باشد به شکل دیگر می میتوان اینطور بیان کرد که برای هر گونه، نر بیشتر از یک موجود یک بار مصرف ماده موجودی با تر است. البته اگر از دیدگاه کلی به یک گونه نگاه کنیم، این نظر کاملا صحیح است. در یک نمونه افراطی در بررسی در مورد فیل‌های دریایی، چهار درصد نرها هشتاد و 88 هشت درصد همه جفتگیری های مورد مشاهده را پوشش می‌دادند. در این موارد و در بسیاری موارد دیگر تعداد زیادی از نر مازاد وجود دارد که احتمالاً هرگز در سراسر عمر فرصت جفتگیری نمی شود اما از جنبه دیگر زندگی این نرها عادی است و منابع غذایی جمعیت خود را همانقدر مصرف می کنند که دیگر بزرگسالان آن جمعیت. از دید کسی که به توجیه مسلحت گروه معتقد است این کار اصراف و هدر دادن است. احتمالا باید آن نرهای مازاد را انگل اجتمادان است. این فقط یکی از مشکلاتی است که در نظریه انتخاب گروه وجود دارد. برعکس آن، نظریه ژن خودخواد در توضیح اینکه چرا تعداد نرها و ماده ها برابرند، حتی وقتی که در عمل نرهای تولید مستگر فقط بخش کوچکی از کل تعداد نرها باشند، مشکلی ندارد. نخستین بار آر ای فیشر این موضوع را توضیح داد. این مسئله که چه تعداد نر و چه تعداد ماده به دنیا میآیند حالت خاصی از یک مشکل در استراتژی والدین است درست همانطور برای والدی که میخواست بقای ژنش را به بیشترین حد ممکن برساند در مورد حد مطلوب اندازی خانواده بحث کردیم اکنون میتوانیم درباره نسبت مطلوب بین دو جنس بحث کنیم آیا بهتر است آدم ژنهای های خود را در پسر به ودیه بگذارد یا در دختر؟ بر فرض مادری همه ی خود را در پسرها سرمایه گذاری کرده و بنابراین چیزی به دخترها نداده باشد. آیا در مجموع او در مقایسه با رقیبی که روی دختر سرمایه گذاری کرده در خزانه ژنی آینده سهام بیشتری خواهد داشت؟ آیا از جن ترجیح پسر کم شمارتر یا پرشمارتر از جن ترجیح دختر است؟ فیشر نشان داد که این نسبت در شرایط عادی، پایدار و پنجاه پنجاه است. برای درک علت آن باید اول کمی از سازوکار تعیین جنسیت اطلاع پیدا کنیم. در پستانداران تعیین جنسیت از نظر ژنی به صورت زیر است. همه تخمک ها این استعداد را دارند که به موجود نر یا ماده تبدیل شوند. و این اسپرم است که کروموزوم های تعیین کننده جنسیت را می آورد. نیمی از اسپرم هایی که توسط مرد تولید می شود، ماده یا اسپرم های ایکس هستند و نیمی دیگر نرساز یا اسپرم های وای هستند. این دو نوع اسپرم به هم شباهت دارند. تفاوتشان فقط از نظر یک کروموزوم است. یعنی که باعث می شود پدری فقط دختر داشته باشد. با واداشتن او به اینکه فقط اسپرم X بسازد به هدف خود میرسد رسد. یعنی که باعث می شود مادری فقط دختر داشته باشد، کاری می کند که مادر یک اسپرمکش خاص تر از کند یا جنین های مزاکر را سخت کند. ما می خواهیم به چیزی که تعادل یک استراتژی یا راهبرد از نظر تکاملی پایدار یعنی ایهس اس برسیم. گرچه در اینجا، حتی بیش از فصلی که در باب خشونت بود. کاربرد کلمه راهبرد فقط محض رساندن مطلب است. چون هیچ فردی نمیتواند جنسیت بچهش را انتخاب کند. این امکان انتخاب برای جنها وجود دارد که به این یا آن جنس گرایش داشته باشند. اگر فرض کنیم چنین جنهایی که در خدمت نسبتهایی نابرابر از دو جنس وجود داشته باشند، آیا ممکن است یکی از آنها در خزانه ژنی پرشمارتر از آلل رقیبی شود که در خدمت نسبت جنسی برابر است؟ فرض کنید در فیلهای دریایی که قبلا ذکر شد، یک ژن جهش یافت بروز کند که باعث شود، والدین دختران بیشتری داشته باشند چون در جمعیت آنها کم بوده نر وجود ندارد آن دخترها دریافتن جفت به مشکلی برده نمیخورند و ژن دخترداری منتشر می شود. ممکن است بعد در آن جمعیت به تدریج جنسیت به سوی بیشتر شدن و مازاد بودن ماده ها میل کند. از دیدگاه نظریه مصدهدگونه ها مشکلی پیدا نمی شود. زیرا چنان که دیدیم فقط چند نر می توانند اسپرم لازم برای همه آن ماده را فراهم کنند. بنابراین به ظاهر ممکن است این انتظار پیدا شود که ژن دخترساز آنقدر به انتشار خود ادامه دهد که تعادل نسبت دو جنس به حدی کم شود که چند نر باقی مانده فقط با تلاش بی خود بتوانند از عهده این همه ماده برایند ولی حالا در نظر بیاورید آن چند پدر و مادری که صاحب فرزند پسرند از چه امتیاز ژنی جانانهای برخوردار میشوند هرکس که سرمایهاش را روی پسر صرف کند از این بخت بلند برخوردار است که پدر یا مادر بزرگ فیلهای آبی زیادی باشد آنها که غیر از دختر تولیدی ندارند به یقین از تعداد کمی نوه محروم نیستند ولی این در مقایسه با امکان ژنی درخشانی که در به روی پسرداران گشوده است چیزی به حساب نمی آید. بنابراین ژن پسرسازی رو به افزایش می گذارد و پاندول به عقب گردد. من برای ساده نشان دادن به حرکت نوسانی پاندول ساده شرکت کردم. در واقع به این پاندول اجازه داده نمی شود در یک طرف یعنی در جهت حاکمیت ماده ها زیاد پیش برود. زیرا به محض که نسبت جنس نابرابر شود، فشار برای داشتن پسر جهت را عوض می کند. راهبرد یا استراتژی تولید پسر و دختر به تعداد برابر راهبردی است که از نظر تکاملی پایدار است به این معنا که اگر ژنی از آن تخلف کند بازنده خواهد بود من داستان را از نظر تعداد پسر در مقابل تعداد دختر گفتم ولی این کار برای آسان کردن مطلب بود به شکل دقیقتر باید آن را از نظر سرمایهگذاری والدین بیان کنیم یعنی هامی آن قضا و امکانات دیگر را که والدین باید فراهم کنند باید با آن شکل که در فصل قبل دیدیم اندازگیری شود والدین باید به طور مساوی برای دختر و پسر سرمایه گذاری کنند این معمولا یعنی از نظر تعداد دختر و پسرشان برابر باشد اما اگر امکاناتی که صرف دختر و پسر می شود نابرابر باشد ممکن است نسبت جنسی نابرابری که از نظر تکاملی پایدار باشد نیز وجود داشته باشد. در مورد فیل دریایی سیاست داشتن سه برابر دختر در مقابل یک پسر اما ساختن یک عبرنر از هر پسر با سرمگذاری سه برابر غذا و هر چیز دیگر در او میتواند روش پایداری باشد. با صرف سرمایه بیشتر برای پسر و درشت و قوی کردن او، والد ممکن است امکانات او را در دستیابی به یک حرمسرا بیشتر کند. اما این یک مورد خاص است. معمولا سرمایه که برای پسر گذاشته می شود، تقریبا به مقدار سرمایه است که برای دختر صرف می شود و نسبت جنس ها از نظر تعداد معمولا یک به یک است. بنابراین یک ژن معمولی طی سفر طولانیاش در گذر از نسل ها تقریبا نصف عمرش را در بدن نرها و نصف دیگر را در بدن مادهها میگذراند بعضی ژنها اثر خود را فقط در بدن یک جنس نشان می دهند. آن را اثر جنن محدود به جنس مینامند ژنی که طول آلت تناسلی نر را کنترل می کند اثرش را فقط در بدن نرها آشکار می کند. اما در بدن ماده هم وجود دارد و ممکن است اثر کاملا متفاوتی در آنها داشته باشد دلیلی نیست که مرد نتواند امکان داشتن آلت بلند را از مادر به ارس ببرد ژن در هر یک از دونو بدن یعنی زن و مرد که باشد انتظار ما این است که بهترین استفاده را از فرصت های موجود در آن بکند این فرصت ها بسته به اینکه بدن نر یا بدن ماده باشد با هم فرق دارند برای آسانی کار یک بار دیگر می توانیم فرض را بر این بگذاریم که بدن هر فرد یک ماشین خودخواه است که برای ژنهایش از هیچ کوششی فروگذار نمی کند برای چنین ماشین خودخواهی اگر نر باشد بهترین سیاست یک چیز است اگر ماده باشد چیز دیگر و کاملا متفاوت برای گفتن کوتاه سخن ما بار دیگر قرار میگذاریم از افراد طوری صحبت کنیم که انگار آگاهانه هدفی را در نظر دارند. اما که قبلا این کار را کردیم، در پس ذهن خود می‌دانیم که کلمات را به بازی گرفته ایم. در واقع هر بدن ماشینی است که ژن‌های خودخواهش آن را کور برنامه برنامه‌ریزی کرده است. بار دیگر آن جفتی را که در ابتدای فصل گفتیم در نظر بیاورید. هر دو شریک به عنوان ماشین خودخوا میخواهند تعداد دختر و پسرهایشان برابر باشد تا اینجا با هم مشکلی ندارند جایی که به اختلاف بر میخورند این است که چه کسی بار اصلی بزرگ کردن هر یک از بچه ها رو به دوش بکشد هر فرد میل دارد تدل امکان تعداد بیشتری بچه داشته باشد هرچه مقدار سرمایه او روی یک بچه کمتر باشد میتواند تعداد آنها را بیشتر کند معلوم است راه رسیدن به چنین وضعیتی این است که شریک جنسی خود را ترغیب کند تا بیش از سهم خود برای بچه ها گذاری کند و خودش را آزاد بگذارد که از شریک های جنسی دیگر بچه های دیگری داشته باشد. این راهبرد برای هر دو جنس راهبرد مطلوبی است. اما نیله به آن برای ماده مشکل است. چون مادر در ابتدا با یک تخم بزرگ پر از مواد غذایی سرمایه گذاری بیشتری می کند و از همان لحظه لقا مایه بیشتری به نسبت پدر می گذارد. اگر آن بچه بمیرد او خیلی بیشتر از پدر ضرر می کند و مهمتر اینکه بعد از این هم او باید بیشتر از پدر مایه بگذارد تا بچه دیگری را به سن آن بچه برساند. اگر او بچه را به امید پدر میگذاشت و خودش با نرهای دیگر سرگر میشد ممکن بود پدر با هزینه نسبتاً کمی برای خود تلافی کند و بچه را به امان خدا رها کند بنابراین دست کم در مراحل اولی رشد بچه اگر قرار به گذاشتن و رفتن باشد احتمالاً این پدر است که مادر را میگذارد و میرود نه برعکس و همین ترتیب نظار می روید. ماده بیش از نر برای بچه سرمایه گذاری کند. نه فقط در بد و عمر بلکه در سراسر دوران رشد. به این ترتیب برای مثال در پستانداران این ماده است که جنین را در بدن خود می پرورد. شیر درست می کند که بچه بعد از به دنیا آمدن بخورد و زحمت بزرگ کردن او را به گردن می گیرد. جنس ماده مورد بهره برداری واقع می شود. و از نظر تکاملی بنیان این سو استفاده بر این واقعیت بنا شده که تخمک از اسپرم درشتر است. البته در گونه های زیادی پدر سخت کار می کند و با مهربانی و بردباری از بچه مراقبت می کند. با این حال باید این انتظار را داشت که به طور معمول فشاری روی نرهاست که برای هر بچه کمی کمتر تر مایه و سعی کنند از ماده های دیگر بچه های دیگر داشته باشند. منظورم این است که جنی در خزانه جنی موفق به حساب می آید که در او این تمایل باشد که بگوید بعدم اگر نر هستی کمی زودتر از اینکه آلل رقیب به من مجبورت کند و خود را رها کنه و دنبال ماده دیگری برو. دامنی این فشار تکاملی در گونه های مختلف بسیار متفاوت است. در بسیاری مثلا مرغ بهشتی اصلا هیچ کمکی از طرف نر به ماده داده نمی شود. و او به تنهایی بچهاش را بزرگ می‌کند. گونه‌های دیگری مانند کیتی ویک ها با تک همسری پیوندهای بسیار وفادارانهای برقرار می کنند و هر دو شریک در بزرگ کردن بچه ها همکاری دارند. در اینجا باید فرض را بر این بگذاریم که جریانی در جهت مخالف فشار تکامل وجود دارد. آن چیست؟ باید برای راهبرد سوء استفاده از شریک جنسی علاوه بر منفعتی که همراه آن است یک نوع مجازات هم مقرر شده باشد و در کیتیویک این مجازات بر آن منفعت میچربد در هر صورت برای پدر فقط در صورتی به صرف است که زن و بچه را رها کند که آن زن به احتمال زیاد بتواند به تنهایی بچه را بزرگ کند تریور صورت های مختلفی از واکنش یک مادر رها شده را در نظر گرفته است بهترین کار برای او این است که نر دیگری را بفریبد، و باکسرت او بچهش رو بزرگ کند و فکر کند بچه خودش است. اگر بچه هنوز به دنیا نیامده باشد این کار زیاد مشکل نیست. البته با اینکه بچه نیمی از جن آن مادر را دارد از جن آن پدر گول خورده چیزی در او نیست. انتخاب طبیعی این گول خوردن در نرها را به شدت مجازات می کند و در واقع نرهایی را ترجیح می دهد که سعی می کنند، هر فرزند خانده ی بلقوهی را که درون همسر جدیدشان از بین ببرند. به احتمال زیاد این توجیه همان پدیده است که اثر بروست دارد. موشهای نر یک ماده شیمیایی ترشح می کنند که وقتی به مشام ماده باردار برسد جنینش را سخت می کند. ولی فقط در صورتی جنین سخت می شود که آن بو با بوی جفت قبلیش فرق داشته باشد. به این ترتیب موش نر فرزندخانده بلقووش را میکشد و موجب می‌شود جفت مادهش فقط پذیرای های جنسی او باشد. جالب اینکه که آردری اثر بروس را ساز و کار برای کنترل جمعیت به حساب میآورد. یک مثال مشابه این، شیرهای نر هستند که وقتی وارد یک گله جدید می‌شوند، گاهی شیرهای کوچک را میکشند، شاید به خاطر اینکه بچه خودشان نیست. نر میتواند، بدون اینکه لزوماً فرزند خوانده ها را بکشد به همان نتیجه برسد میتواند با قرار دادن یک دوره طولانی آشنایی قبل از آمیزش با ماده همه این نرهایی را که به او نزدیک میشوند دور کند و مانع گریز او از خود شود به این ترتیب میتواند صبر کند و ببیند آیا او در ذهن خود از کس دیگر بچهای دارد و اگر چنین بود رهایش کند ما در پایین خواهیم دید چرا ممکن است یک ماده طالب این باشد که یک دوره طولانی نامزدی قبل از آمیزش داشته باشد نر هم به می میتواند خواستار چنین چیزی باشد به شرطی که ماده را از همه نرهای دیگر دور نگه دارد میتواند از اینکه نادانسته بانی خیر شود و بچه نر دیگری را بزرگ کند جان سالم به در ببرد اگر آن ماده تنها مده نتواند نر جدیدی را فریب دهد که برچهش را بپذیرد آن وقت اکدیف چیست؟ بیشتر به سن بچه بستگی دارد اگر تازه نطفه بسته شده باشد در واقع درست است که او یک تخمک تمام و شاید چیزی بیشتر را سرمایه گذاری کرده باشد ولی هنوز برایش به صرف این است که جنین را سخت و هرچه زودتر جفت جدیدی پیدا کند در این شرایط برای هر دو طرف او و شوهر جدید بالقوهش این بهتر است که بچه سخت شود چون ما فرض را بر این گذاشتیم که امید نیست او بتواند نر را دهد تا بچه را بپذیرد این توضیحی است برای اینکه چرا اثر برست از نظر ماده ها کارآمد است. انتخاب دیگری که ماده می تواند داشته باشد این است که جان خود را در کف دست گیرد و به تنهایی بچه را بزرگ کند. این مخصوصا وقتی بچه بزرگ باشد به صرفه است. هرچه بچه بزرگتر باشد، یعنی سرمایه که تا کنون صرف او شده بیشتر است و نیاز به سرمایه کمتری است تا کار پرورش او به انجام برسد. حتی اگر هنوز کاملا کوچک باشد شاید باز برای مادرین به صرفه باشد که سعی کند همان چیزی را که در ابتدا سرمایه گذاری کرده جمع و جور کند حتی اگر مجبور شود در این وضعیت که شوهر او گذاشته و رفته است برای تأمین غذای آن بچه دو برابر کار کند این برای آن زن تا حدی ناخوشایند است که نیمی از ژنهای فرزندش متعلق به آن نرست و میتواند با رها کردن بچه از او انتقام بگیرد اما کینتوزی فایده ای ندارد، حالا نیمی از جنها و تمام مشکل بچه از آن اوست. عجیب اینکه شاید یک سیاست معقول برای مادهی که در معرض خطر تنها رها شدن است این باشد که جلوتر از نر دست بکار شود و از پیش نر برود. این می تواند به باشد، حتی اگر تا آن موقع او بیشتر از نر برای بچه مایه گذاشته باشد. حقیقت ناخوشایند این است که در برخی شرایط شریکی که قبل از طرف مقابل می‌گذرد و می چه مادر باشد چه پدر امتیازی دارد به نام تریورس شریکی که ترکش کرده اند در مخمسه آزاردهنده آزاردهندگیر می افتد. این یک بحث ترسناک ولی بسیار ظریف است می شود کرد شریکی را که لحظه با خود بگوید این بچهاله به قدر کافی بزرگ شده که ما هر کدام به تنهایی بتوانیم از اون نگهداری کنیم بنابراین به نفع من است که حالا بگذارم و بروم البته به شرطی که مطمئن باشم شریکم بچه رو تنها نمیگذارد اگر من حالا بروم شریک من کاری که به نفع ژنهایش باشد میکند تصمیمی که او باید بگیرد خیلی حاضر از تصمیم نیست که من گرفتم زیرا شریکم میداند اگر او هم بگذارد و برود بچه از بین میرود بنابراین با فرض اینکه تصمیم شریک خودخواه من به نفع ژن‌هایش است من به این نتیجه میرسم که بهترین کار این است که اول من او را تر کنم مخصوصا چون ممکن است شریک من هم این فکر من را در سر داشته باشد و شاید هر لحظه در این کار از من جلو بزند مثل همیشه این گفتگو با خود را برای نشان دادن مطلب آورده ایم نکته این است که در انتخاب به ژن اول تر کردن برتری داده می‌شود فقط به این دلیل که برای دوم ترک کردن امتیازی نیست. ما بعضی از کارهایی را از نظر گذراندیم که ممکن است ماده‌ای که او را ترک کرده انجام دهد. اما در همه آنها این حال و هوا وجود داشت که در شرایط ناگوار بهترین کار ممکن انجام میگیرد. آیا اصلا راهی برای ماده وجود دارد که کمتر مورد سوء استفاده قرار گیرد؟ ماده برگ برنده در دست دارد او میتواند از آمیزش خودداری کند در بازار معامله او خواهان دارد علتش علتشمین است که جهیزیه کم نیست تخمکی است پر از مواد غذایی نری که با او جفت میشود به ذخیره غذایی با ارزشی برای فرزند خود دست مییابد ماده در شرایطی است که میتواند قبل از آمیزش کاملا نرخ خود را بالا ببرد بعد از جفت شدن برگ برندش روح شده است. تخمک را به نر تحویل داده است. می توانیم در مورد شرایط سفت و سخت معامله بسیار صحبت کنیم. ولی خوب می دانیم حقیقت امر چیز دیگری است. آیا در واقع هیچ چیزی وجود دارد که معادل آن چانهزنی زنی سفت و سخت باشد و توسط انتخاب طبیعی در راه تکامل پیش برود؟ من دو امکان را مورد بررسی قرار می دهم که یکی راهبرد سعادت خانوادگی نام دارد و دیگری راهبرد هیکل مردانه.